گوینده فرید حامه سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و یاران همراه با برنامه دیگر از قصه های شاهنامه فردوسی در خدمت شما عزیزان هستم در این برنامه قصد داریم به یکی از شیرین ترین، جذاب ترین و پرماجراترین قصه های شاهنامه یعنی هفت خان رستم بپردازیم با ما همراه باشید در دوران سلطنت کیکاووس که یکی از بی ترین و پردرد پادشاهان اسطوری ایرانه هر روز یک بلای جدیدی به خاطر دستگل‌هایی که که کاووس به آب می‌داد، سر ایران و ایرانیان و به خصوص سر پهلوان پهلوانان رستم دستان می اومد. در یکی از این دستگل‌هایی که جناب کی کاووس به آب میده قصد لشکرکشی به سمت مازندران رو میکنه که در اونجا یک سری از دیوها حکومت میکردند بر اثر نابخردی و بیتدبیری در دلی در مازندران اسیر دیو سپید میشه خبر به زال میرسه و اون هم رستم رو که در اون موقع هنوز جوان بود آماده میکنه و بهش میگه که باید بری و کیکاووس رو نجات بدی هرچند این آدم بی مغزه اما در هر حال پادشاه ایرانه برو و اون رو نجات بده اما بدون که راه بسیار سخت و پرخطری در پیش داری رستم هم, هم که کلن آدم نترس و بسیار شجاع و بیباکی بود به پدرش قول میده که تا کیکاووس رو نجات نده بر نگرده ساز و برگش رو آماده میکنه و سوار بر رخش میشه و به سمت مازندران به تاخت حرکت میکنه نبرد رخش با شیری در بیشه رستم که برای رها کردن کیکاووس از دست دیوان بسیار شتاب داشت و بنا به توصیه پدرش به تاخت در حرکت بود شب و روز با اسبش رخش در حال تاختن و سواری بود تا خودش رو به مقصد برسونه و به قول معروف مسیر دو روزه رو در یک روز می کرد تا اینکه بالاخره بعد از دو روز گرسنه شد و خسته به دشتی رسید که پر از گور خر بود و گور خر و کباب گور خر یکی از غذاهای مورد علاقه رستم در اون دشت گوری رو نشونه می و با تیر و کمان تیری به سمت گور پرتاب می و گور در دم جان به جان آفرین تسلیم میکنه. بعد هم جناب رستم آتشی روشن میکنه و گور خر و رو کباب میکنه و نوش جان میکنه. بعد از خوردن این غذای لذیذ خواب به سراغش میاد. و به نظرش میرسه که این بیش جایز چندان ناامنی نیست و میشه شب رو اینجا به کرد. برای همین برای خودش بستری آماده میکنه و افسار و لگام رخش رو باز میکنه تا اون هم در این دشت به چرا بپردازه و استراحتی بکنه و خود رستم هم, هم به خواب میره هنوز پاسی از شب نگذشته بود که تهمتن در خواب عمیقی فرو میره و رخش که در اون اطراف در حال چریدن بود صدایی رو میشنوه شیری از دور رخش رو که اسبی بسیار زیبا و ورزیده بود میبینه و با خودش میگه که به به چه خوراکی اول اسب رو میخورم بعد هم سراغ سوارش اما نمیدونست که این اسب از اون است همین که به سمت اسب یعنی رخش حمله میکنه رخش با دو دست ضربه‌ای به شیر میزنه و بعد هم با دندان پشت اسب رو گاز بدی میگیره از ضربه سنگین سمهای دست رخش شیر از خود بیخود میشه و رخش هم فرصت رو قنیمت میشموره و حملش رو ادامه میده و با دندون گردن شیر رو پاره میکنه و شیر بدبخت تا میاد به خودش به جنبه لط و پار بر زمین میفته رستم از صدای جدال و جنگ و گریزی که بین شیر و رخش اتفاق میفته از خواب بلند میشه و میبینه که یک شیر درنده بزرگ خوری نمالین بر زمین افتاده و رخش هم سرها و لغه دور جنازه جناب شیر برای خودش قدم میزنه رستم میگه ای رخش نادون این چه کاریه که کردی تو رو چه به جنگیدن با شیر اگه به دست این شیر کشته میشدی من با این همه ابزار و عدوات جنگی زین و برگ و گرز و کمون و تیغ و این زره سنگین یا همون ببر بیان چجوری میخواستم پیاده تا مازندران برم؟ از این بود اگر اتفاقی برات افتاد بیا و منو بیدار کن خودت رو به خطر ننداز این رو میگه و دوباره به بسترش برمیگرده و تا صبح آرام و راحت میخوابه خب حالا میرسیم به خانه دوم گذشتن رستم از بیابان خشک و بی‌آبالف بعد از اینکه خورشید طلو میکنه و همه جا روشن میشه رستم سازاوری اسب رو دوباره بر روی رخش میگذاره و آماده میشه برای حرکت کردن بعد از طی مسیری در اون دشت سرسبز و پرآبالف به یک بیابان خشک و سوزان میرسه گرمای هوای اون بیابان یا اون کویر انقدر زیاد بود که اگر حتی مرغی توی آسمون اونجا پر میزد کباب میشد و به زمین میافتاد. رستم از فرت تشنگی زبونش چاک چاک شده بود و تن رخش هم از تاب با توان رفته بود رستم پیاده میشه تلو تلو خوران افسار رخش رو میگیره و راه بیابوم رو در پیش میگیره بعد از مدتی که به این شکل پیاده در زیر اون آفتاب سوزان و اون گرمای طاقت فرسا حرکت میکنه رستم به سطوح میاد و رو به آسمان میکنه و با خدا میگه ای خداوند بزرگ که هر رنجی رو به آسایش تبدیل میکنی و همه آرامش ها و رنج ها و همه چیز در دست توه اگر از رنج کشیدن من خوشنودی بسیار خوب من به اندازه کافی رنج کشیدم و دیگر تاب و توانی برام نمونده من این رنج رو به خودم هموار کردم تا شاید بتونم کاوز شاه رو نجات بدم که ایرانیان و مردم ایران از چنگال این دیو بدسیرت نجات پیدا کنن و من جونم رو در سر این راه گذاشتم به خاطر مردم ایران الان هم تسلیم میخواسته توام. خواهش می کنم به من کمک کن و دل پدرم زال رو هم نسوزان و منو در این صحرای بیاب و علف حلاک نکن. همینطور که داشت پیاده و از تاب و توان افتاده در بیابان قدم می زد و بیش می رفت با خودش و با خدای خودش راز و نیاز می کرد که امیدوارم بتونم زنده از این بیابون گذر کنم و کاری رو که به عهده گرفتم و مسئولیتی که بر دوشم رو به انجام برسونم و با خودش می که اگر سر و کارم با یک لشکر بود میدونستم که چطوری باید با اونا مبارزه کنم و یک تنه حریف یک لشکر بشم اگر کوه در مقابلم ظاهر می من با این گرز کوه را هم خرد میکردم و حتی اگر رود جیهون در مقابلم بود و بر من میغورید با نیروی که خداوند به من داده اونو آروم میکردم اما با این راه دراز و این گرمای سوزان و این بیابی نمیدونم که چه باید بکنم اما از اون اونجایی که اهورا مزدا خداوندگار ایران حامی و پشتیبان رستم بود رستم اون مرحله رو هم به سلامت گذروند و به پایان اون بیابان رسید و تونست در جایی که ای بود و آبی استراحتی بکنه و خودش رو از اون حال زار و نظار نجات بده به این ترتیب با یاری خداوند و با نیرویی که خداوند به رستم داده بود رستم از اون بیابان خشک و سوزان و بیابالف به سلامت عبور میکنه کنه سوم نبرد رستم و اجده است بعد از عبور از اون بیابان بیابالف به دشت نسبتا سرسبزی می رسند و در اونجا رستم در آب چشمهای سر و تن و و رخش رو همراها میکنه تا استراحتی بکنه و در علفها به چرا مشغول بشه اما نمیدونست که این دشت جایگاه اژدهایی است که شیر و پیل هم از پس اون برنمیان شب هنگام که رستم در خواب بود و رخش در حال چرا اژدهها به دشت برمیگرده و میبینه که یک نفر اونجا توی قلم اون خابیده و عصبی هم داره در چراگاه چرا میکنه بسیار متعجب شد که این کیه که به خودش جرأت داده که به سمت سرزمین و قلم من بیاد و به سمت رخش حمله میکنه رخش که توصیه رستم رو در مورد مبارزش با شیر یادش نرفته بود خودش رو به بالین رستم میرسونه و با کوبیدن سمهاش بر زمین و بلند کردن خاک و صدای شیحه سعی میکنه رستم رو بیدار کنه رستم سراسیم از خواب بیدار میشه و در همون لحظه اژدها با افسونی که بلد بود خودش رو ناپدید میکنه رستم دوروبر رو نگاه میکنه و میبینه هیچ خبری نیست با تندی به رخش میگه که چرا من از خواب بیدار کردی بعد از اون همه مخافاتو و راه درازی که طی کردیم نمیذاری استراحت کنم تو هم برو به استراحتت برس و بذار من بخوابم و دوباره سرش به بالش نرسیده به خواب عمیقی فرو میره ها دوباره ظاهر میشه و این بار هم به سمت رخش میاد اما رخش باز هم با شیه و کوبیدن پایی بر زمین رستم رو بیدار میکنه و به محض اینکه رستم بیدار میشه دوباره اجدها ناپدید میشه رستم عصبانی میشه به رخش میگه ببین اگر یک بار دیگه بی دلیل من از خواب بیدار کنی با همین شمشیر سرتو از تنت جدا میکنم و خودم تنها و پیاده به مازندران میرم. گفتم اگر اتفاقی افتاد دشمنی در کار بود کسی بهت حمله کرد منو بیدار کن. نگفتم بیا علکی من از خواب بیدار کن. حالا برو و باز هم رستم به خواب میره و این بار بار سوم اجدها دوباره پیدا میشه با اون آتشینش این بار که رخش اجده رو میبینه نمیدونه باید چیکار کنه از یک طرف از خشم رستم میترسه و از یک طرف هم یک اجده وحشتناک با اون آتش دهانش در انتظارشه شروع میکنه به دویدن اما این بار نگرانی رستم و مهری که نسبت به رخش داره رستم رو بیدار میکنه و به محض اینکه بیدار میشه متوجه میشه که رخش بسیار و داره اینور بر اونور میره و این دفعه دیگه اژدها هم فرصت پنهان شدن پیدا نمیکنه در اون تاریکی شب چشمهای رستن به اجدها میفته شمشیر رو از غلاف بیرون میکشه و به سمت اژدها حمله میکنه بهش میگه موجود پلید اسم تو چیه که دیگه دورانت به سر اومده و میخوام بدون نام و نشون به دست من کشته نشی اجدها قرشی میکنه و میگه اقاب جرعت نمیکنه توی دشتی که من در اونجا هستم پرواز کنه و ستاره این زمین رو حتی به خواب هم نمیبینه تو جون به دست مرگ سپردی که پا در این دشت گذاشتی تو بگو اسمت چیه تهمتن میگه من رستم دستانم از خاندان نیرمم و به تنهایی لشکری کینورم باید صبر کنی تا قدرت زور بازوی من رو ببینی اینو میگه و به سمت اجداها حمله میکنه اجداها هم بسیار زورمند بود و با هم گلاویز میشن و درگیری بالا میگیره رخش که این صحنه رو میبینه نمیتونه بی تفاوت بمونه و صبر کنه ببینه رستم با این اژدها چیکار میکنه برای همین به سمت اژدها حمله میکنه و دندانش رو در تن اژدها ها فرو میکنه و همونطور که پوست شیر رو از هم دریده بود بخشی از پوست بدن اجده ها رو هم پاره میکنه رستم که رخش رو اینجان میبینه جمشیرش رو میکشه و با ضربه این برقاسا سر از تن اژدها جدا میکنه رودی از خون بر زمین جاری میشه و تن ها مثل یک کوه بی جون به زمین میافته رستم خداوندگار جهان آفرین رو سپاس میگه و بعد از اون با رخش به سراغ رودخونه یا اون چشمه آبی که در اون بوده میره و سر و تن میشور تا آماده بشه برای ادامه سفر خب دوستان عزیز خانهای اول دوم و سوم از هفت خان رستم رو به طور خلاصه براتون تعریف کردم چهار خان دیگه میمونه و ماجراهایی که در ادامه سفر رستم دستان تا رسیدن به مازندران و نبرد نهاییش با دیو سپید باقی میمونه که اون رو انشالله و به امید خدا در برنامه های آینده تقدیم حضورتون می با این امید که از شنیدن این داستان لذت برده باشید همه شما رو به خداوندگار بزرگ می پیروز باشید و زربلند